چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه جهد ما کجا خواهد رفت، پیوسته نشسته ایم از حسرت آنک دیر آمده ایم و زود می باید رفت. خیام ز بهر گناه ماتم چیست از خوردن غم پایده بیش و کم چیست، آن را که گناه نکرد افران نبد افران ز برای گناه آمد قم چیست. در پرده اسرار کسی را ره نیست، این تعبیه جان هیچ کس آگه نیست، جز در دل خاک تیره منزلگه نیست، افسوس که این فسانه ها کوته نیست. در عالم بی وفا که منزلگه ماست، بسیار بجستم به قیاسی که مراست، چون روی تو ماه نیست، روشن گفتم، چون قد تو سرب نیست، میگویم راست،